قال اخبرني ابو بكر بن محمد العمرة عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والاه وصحبه اجمعين أما بعد شله شميم باب از باباي مفرد ما بخاري باب بالجار توصیه هایی که به همسایه شده توصیه هایی که به همسایه شده در سنت در سنت نبوی سفارش هایی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم داشتند اولین حدیث حدیث شماره چهار البته از صحیح ادم افراد و سد یک از اصل کتاب ادم افراد ما بخاری حدیث مول مومنین عایشه رضی الله عنها که میگوید رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمودند مازال جبریل صلی الله علیه و وسلم يوصيني بالجاري حتى ظننت انه سيورثه ما زال انهم جانا جبرائيل عليه الصلاه والسلام جبرائيل و دیگر ملائکه الله سلوات و درود بر آنها فرستاده میشه به خاطر مشارکتشون با انبیا در عسمت در نقل وحی و در عدم رخ دادن هیچ نوع گناهی از آنها هرچند که پیامبران الهی شاید مرتکب گناهی بشن ولی كه الله فرشتگانش هیچگاه مرتکب گناه هم حتی نمیشن لا یحسن الله ما اماره هم هیچ وقت عصیان و سرکشی از دستورات الهی نمی‌کنن این شرف مقامشونه از این باب هست که اونها لایق درود فرستادن لایق سلام فرستادن همونطور که بر پیامبران الهی درود و سلام می‌فرستی من چنین اینجا بخاری الا یا از از خود ما بخاری هست یا حسنی که از راویان که جو در ضمن حدیث این درود را بر جبرئیل یاد میکنه. بس همچنان جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و سلم و سلم جبرئیل علیه الصلاه و السلام به من توصیه و سفارش می‌کردن به همسایه توصیه می‌کردن همچنان یعنی قضیه تکرار شده قضیه تکرار توصیه و سفارش به همسایه حتی ظننتو توجهی که رسول الله میگه من فکر کردم گمان کردم ان هو سی ورثه که یکی از میراث برای یکی از میراث برای همسایه میشه یعنی اینقدر من از بس که سفارش می‌کرد دیگه گفتم حتما دیگه اررسم از اون دیگر میبرن همسایه ها این قدر نزدیک همسایه به انسان این اهمیت دادن این کرم اخلاقه که اسلام به ما سفارش داره میکنه یعنی اون دین اسلامی که الله برگزیده برای ما انتخاب کرده برای ما یکی از محاسنش در اهمیت دادن به همسایه ها هست اهمیت دادن به همسایه ها هست عدم آزار اذیت بلکه بر خلاف اون جهت مخالف عدم آزار اذیت تو مأموری به احسان به خوبی نه اینکه تو بدی نكنی بلکه تو ماموری به خوبی کردن نه اینکه فقط بگی من آزار راضیات نمیدم من به اونها نمی نمیکنم نه بلکه تو ماموری که به اونها خوبی بکنی نه اینکه فقط دست بکشی از بدی نه ماموری که خوبی بکنی حالا این احادیث اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرما اینقدر من توصیه به خوبی شدم به همسایه اینقدر توصیه به خوبی شدم که باید خوبی بکنم خوبی بکنم که تا که فکر کردم که دیگه فقط مونده قضیه ارس و میراس. که همسایه ها هم از همدیگه ارس هم ببرن یعنی این قد توصیه شده به همسایه پس اگر همسایه با توجه به این حدیث پس اگر همسایه حق فرضی در مال ما نداره به عنوان ارس و میراس تونه ارس و الله تعین کرده که کی میبره از ما حداقلش حق ندبی داره در اون اموالی که ما داریم در اون غذایی که می‌خوریم که الان میاد با توجه به حدیث بعدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش میکنه اگر غذایی درست کردی همساییات هم در اون باهات شریک باشن یه این از کمال ایمانه از کمال ایمانه و این سنت یا سنت های الان از سنت هایی که به فراموشی سفرده شده حق همسایه از ارتباط، اونها خوبی بکنیم، احسان بکنیم، با, با غذا، با آبی، با هر چیزی یعنی با بی عیادتشون رفتن و هر نوع احسانی که ما میتونیم در حق اونها داشته باشیم اینها از سنت های از اون سنت هایی که در جاهلیت هم بوده یعنی این چیزی نیست که فقط در اسلام به توصیه شده، در تمامی عدیان بوده و اون عرب جاهلیت در مکه این سنت ابراهیمی رو داشتن این یک شریعی خاص امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست بلکه شریعتی بوده دیانتی بوده که امتهای پیشین هم داشتن الان شاید میاد در حدیث بعدی نیمون هایی از اون کرم هایی که پیامبران الهی داشتن خسن ابراهیم علیه السلام و دیگر پیانبران حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا صدقت و قال اخبرنا ابن عوینت عن عن نافع ابن جبیر عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصوت. friend افتدك حديث حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه بيrotr رسول الله صلى الله عليه وسلم فارمودا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر کسی که ایمان به الله و روز آخرت داره. چرا این دوتا با هم دیگه در این حدیث مقترن شدن. کنار هم دیگر اومدن. ایمان به الله و ایمان به روز آخرت. ازباب بیاد داشتن حساب و کتاب در روز آخرت. وقتی که یک مسئله مهم میخواد بهش اشاره بشه که روش انسان حساب و کتاب میشه و باید آماده بشه در کنار ایمان به الله ایمان به روز آخرت میاد. یاداوری با... یاد رسول اساسن میخواد بهتون سفارش بکنه کاری هست که اونجا شما در روز قیامت در صحر محشر بهش نیاز بندید دارم بهتون تذکر بدم. یعنی این توصیه هست شما باید آمادگی داشته باشید به اون روز این کلمه اینجا اومد همراه با نام الله و ایمانش به خاطر اینه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ایمان به اخرا نه؟ دارین خب اگر دارید پس خودتون آماده بکنید باچی فلیحسن الی جاره اولیش احسان کردن خوبی کردن به همسایه احسان کردن و خوبی کردن به همسایه حالا میاد نمونه های خوبی که رسول الله صلی الله علیه و آله بهش توصیه میکنن سفارش میکنن خواهد تو احادیس بعدی بس ما معموریم به احسان و خوبی در حق همسایه و من كان يؤمن بالله و الیوم الاخر باز تاکید یک مسئله دیگر و من كان يؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه الله اکبر اکرام کردن مهمانی دادن یا پذیرایی از مهمان اکرام دیگه پذیرایی بکنی اونم با بهترین چیزی که تو در توانت هست اکرامه با بهترین چیزی که تو در توانت هست خب این سنت ابراهیمیه این از سنت های ابراهیمی هست که الله جل و علا در قرآن از ابراهیم یاد میکنه اونجایی که الله یاد میکنه که ابراهیم گوسالی نبوزید نگوزفند یا گوزاله بچه گاوی را قربانی که میکن زفت میکنه که الله میگه یاد عجل سمین نه اونم گوزاله لاغری نه سمین بوده نه چاق بوده یک گوزاله را سر میزنه برای چند نفر؟ دو نفر اون دو نفر هم اونا خودشو معرفی نکردن که که ی الله هن چون قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم ملائک نزد قیام بران وقتی که میومدن به شکل انسان ها در میومدن اینها الان دو تا ملک از ملکی الله اومدن نزد ابراهیم برای بشارت دادنش دو تا بشارت داشتن یکی اینکه قوم لوت نابود میشن و دومی هم اینکه همسرت ساره حامله میشه و بچی از ساره الله بهت عطا میکنه که اونجا ساره میشنبه فسکت وجه ها و قالت عجوز و نعقیب پیرزنی بسید من توقع نداشته که این چین بشارتی الله بهش بده خب اینجا کرم ابراهیمی چی بود؟ عجر غوساله اونم نغوساله عادی یک غوساله آدم سر بزنه برای دو نفر این چیه نهایت کرم به میگن کرم به میگن کرم بالاتر همه سلاح شده کرم ابراهیمی پیشوای اکرام کنندگان کیه ابراهیم خلیل رحمان هیچ کس با ابراهیم نمیتونیم قیاس بگیریم در کرمش الا رسول الله صلی الله علیه و سلم الا رسول الله صلی الله علیه و سلم که عمر در دستش نمونده بس که کرم بخشش داشت مثل یک بادی که می‌ریزه این چیلین بوده رسول الله صلی اللہ علیہ هر چی داره ایداش میداد پس اگر ایمان به الله و روز آخرت داریم باید از مهمانهای خودمون پذیرایی بکنیم فلیو کرم فلیو کرم امر یا امر نیست امر بر چی میده بر بجوه. اکرام کردن مؤمن وظیفه است هر که احکام پنجگانه شهر بر پذیرایی وارده حق اون مهمان الا بین استروز که واجبه و بین استحبابش بیشتر از اون و اله آخر جای فرج عین جای فرض کفایه هست و جای هم مستحبه و جای مباهه و حداقلش حداقلش مستحب بدنه چیزی که نصوص برش دلالت میده چون احسان در حق غیر و در مقابل احسان نمیشه که ما پاداش نیابی بخاطر همین این سلاح که مباهه الا ما بگیم الان در حق غیر مسلمانش یا بگیم مثلا کراحت داره یا حرامه چون رسول الله صلی الله علیه و سلم هم توصیهش در شرح هست این که لا یاکل که الا تقی غذا تو جز متقیان کسی دیگه نخوره سر سفره نشینه ولی خب ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب مثلا توصیه به همسایه به همسایه یهودیش مثلا غذا میداد غذا میفرستاد ما بسگی به نیتمون داره جایی ما اون غذا اون مهمونیمون پذیراییمون از باب دعوت از باب که خوشی و خوبی و احسان دین را با بهنها برسونیم اکرامش میکنیم که تصور بدی از دینداران نداشته باشه خوبی بهش میکنیم از اینکه خوبی بهش برسونیم ولی جایی نه این اکرام از باب چاپلوسیه معموری، افسری یا فرمونداری کسی دعوت کردیم از باب اینکه خودمون رو جا بندازیم الا تو دهیاری تو شورای شهر توی فلان اکرام کردیم ولی این اکرام هدف چیه نیت چیه نیت باطله. نیت ریاکاریه، نیت دنیاس یعنی اون وظیفه شرعی نیست که ما داریم انجام میدیم اون اکرام اون مهمونا قصمون چیه صرف دنیاس پاداش داریم نه وزر داریم گناه داریم روز قیامت و واه گردنمونه آویز گردنمونه این گناه معصیته چون هدفت باطله حالا هرچند که شاید جایی هدف محمود باشه جایی همین اسباب و ابزار دنیوی شاید محمود باشه یعنی اون دنیا هم تو میخوایی مثلاً با اون پست مقام دنیا ببری؟ از بابی که زل می را برداری یا ظالم روی کار نیاد میتونه نیت خیری هم باشه ولی من مقصودم از اون که شخص برای زل کردن نشستم بر سر حکمی که بتونه زمینی بگیره برای خودش یا بتونه پروژه ای از نهاد دولتی بگیره من بحثم رو اونه رو اون قسمت اون زاویه هست. حالا خوشتان تو بحث مجلس و نمایندگان و نمایندگان شوراها و اینها پیش میاد. كشخص فقد جيبش بكونه بكونه بك شخص فقط بفكرة جي بشه كي جونه كي باول بکنه اختلاص بکنه بكشه از دولات ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا اولي ليصمت اولي ليصمت. من كان يؤمن اگر ايمان برزو آخرات داريت يا حرف خوبي بزنید يا ساکت وشي حرف نزنید صمت در مقابل چه نطق. تو ناطقی میتونی حرف بزنی. ولی که از باب احتساب اج حرف نمیزنی. هر جای جای حرف زدن نیست. موظم این زبانت باش. این زبانت شاید تو رو جهنمی بکنه. در مقابل یک حرف ناپسند زدن، یک حرف بد زدن، یک حرف زشت زدن، یک حرف که الله برات خش ببرزه، الله خشگیم بشه براتو بخاطر اون تلفز اون کلمه ناروات، ناسزاتی. در مقابل اون تلفظ حرف ناسزه الله تو را مؤاخذه بکنه بر تو خشمین بشه یک کلمه ای از سخط الهی از کلماتی کلماتیک الله دوست نداره اون کلمه رو بر سر زبونت بیاری شده از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله داده عموم المومنین رضی الله عنها یکی که خب رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که با عمر صفیه ازدواج کرده بود ما پسندیدن یعنی عمره المومنین نمیپسندیدن از باب اینکه این دختر هم شوهر قبلش یهودی بوده هم پدرش یهودی بودن و اینا ستیز داشتن با رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی پسندیدیم روزی از دهنم در رفت گفتم که این قدش کوتاه اینا قصیره قدش کوتاه رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت خشمگین میشه بر این کلمه سخت خشمگین میشه و قسم یاد میکنه والله لقد قلت کلمه یک کلمه گفتی ای عائشه. اگر با آب دریا آمیخته بشه آب دریا رو آلوده میکنه یک کلمه چون درش تحقیره کی او را فریده؟ خالقشگیه الله جل شانه این از کلماتی که سخط و خشم الله برش هست تحقیر کردن به دیگران استهزا و مسخر بدگویی و ناسزا گفتن به کسی اینها کلماتی که ما در مقابل اون روز قیامت محاسبه میشیم پس محاسب باشیم و جلو زبانمون بگیریم اگر ایمان به روز آخرت داریم حق ناسه در حق کسی ظلم کردیم روز قیامت باید رو پس بدی حق الناس حق الناس بخش شدنی نیست حق الناس بخش شدنی نیست غیبت تهمت دروغ پشت کسی میدی در مقابلش محاسبه میشی حق الناس الله شاد از حق خودش ببخشه ان الله لا یغفر ان و به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء در حق خودش ولی حق انسان ها نه چنانچه رسول الله در حدیث مفلس میگن اتدین و لمن مفلس قال المفلس فینا من لا درهم ولا دین الا بعد که الان میاد شده بازم این حدیث رسول الله صحیح میفرمون مفلس از امت من کسی که روز قیامت میاد قدشتم هاده و ضرب هاده یکی رو کتک زده یکی رو دشنام داده ناسزا گفته این ناس از حسناتش میگیره حسنات و اخوض هاده من حسناته و هاده من حسناته این از حسناتش میگیره اون از حق ناسه این میام خیلی جا هست شاید برای ما یه چیز باشه. عادی باشه روزمرگی شده، یعنی برای ما نسبت ببچه مون، نسبت حتی همسرمون فلیکن ولی کن سنگین الله جل شانه. شاید با این قصه، شاید این قضیه واضح تر و روشند بشه. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میشن از طرف او بکر عمر رضی الله عنهما. او بکر عمر رضی الله عنهما قضای درست کرده بودن، آب گوشت، ایدام. در حال پختن، گفتن که این خادم چقدر میخوابه بیدارش کنم تا بره رسول الله الله علیه و سلم صدا بزنه بیدارش میکنه یکی شون میگه بیدارش کن بعد اون خادم میره نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ابوبکر عمر رضی الله عنه میگن که تو ترا صدا میزنن برای دعوتت کردن برای خوردن آب گوشت رسول الله صلی الله علیه و سلم امتناع ورزید نمیمنت ابوبکر عمر رضی الله عنه میترسه میاد نزد رسول الله علیه و سلم میگه که یا رسول الله تو با اون غلام با اون خادم گفتی که من نمیام چون شما آب گوشت رو خوردید ممکن نخورده بودید ما منتظر تو بودیم بیادبی رو ما نمی کنیم اصلا تعجب کردم چرا رسول این هر کی زده شاید خادم مثلا گفته که اینا خورده شاید چیزی شده خبری از آسمون اومده خیلی برایشون سخت هم بشه گران تمام میشه میان نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله چرا این حرف زدی یعنی چی شده قال انی لا ارى لحم اخيكما بین لا ولای دندوناتون گوشت برادرتون رو ندارم میبینم چون الله در قرآن میگه که چی غیبت کردن حکم چه جوری داره یاکل لحم اخیه میت فكرهتم خوردن گوشت برادر میگه من گوشت برادرتون لا ولای دندوناتون میبینم میگه یا رسول الله فستغفر لنا انا مغفرتكم بریمه او که هو و یستغفر لكم این غلام این خادم برای شما طلب مغفرت بکنه این شما رو ببخشه چون در حق وضل کردید چی گفتم بگه؟ چقدر میخوابه؟ بیدارش کن چقدر میخواب بیدارش کن یک کلمه هست خیلی هم راحت شد الان ما ابراز بکنیم بگیم در مقابل هم دیگه شاید از باب تمسخر بگیم نسبت به یک شخص از باب متلک بگیم فلانی خواب خصوصا در غیبتش حالا جلوه شاید حالا بسیگی داره که برنجه بازم ظلمه در حقش خیلی چیزها هست ما نمیکنیم. یعنی بانوان این که الان ما جری هستیم جرعت داریم داریم تو روش میگیم چرا این کارو بکنیم؟ چرا برنجونیم؟ یک کلمه هست جرخی زخمی بر قلب کسی ایجاد کردن جرم جنایت گناه ظلم تعدیه چرا برنجونیش؟ چرا این زبانت چاقی بشه بر روح روان برادر مسرمانت؟ جریح دارش بکن چون وظیفه ما ادخال سرور خوشی در قلب مؤمن الان شما همه این حواشی دارید همسایه چرا ما توصیه شدیم مهمان چرا توصیه شدیم خوشی در قلب دیگران ایجاد بکنیم دل مردم را خوش بکنیم درسته حالا کسی دلشون خوش نمیکنه نمیتونی خوش بکنیم ولی قل خیرا نمیتونی خوش بکنیم ولی اسمود حداقل جلوی زبونت رو ببند جلوی دهانت ببند لا قشرت از مردم شر رو کوتاه کن نمیتونی خیری بکنی احسانی بکنی جلو به شر رو بگیر شر بکش حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله باب حق الجار حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت ابا ربيعه الكلاعي قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال لئن يزن الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزن بإمرأة جاره وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمه الله عز وجل ورسوله فقال لئن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره شلهافت من باب باب حق <تصفيق> الجار أز حقهم صحيح بعثي قبتش الحقهم صحيح حقه واجبه حقیقی که به گردن تو داره 76مین حدیث 76مین حدیث مقداد بن اسود رضی الله عنه قال سأل رسول الله صلی الله علیه و آله اصحابو عن الزنا رسول الله صلی الله علیه و آله از یاران و اصحاب میپرسه از زنا حکمش چیه حرام کسی شک داره در حکمش حرام چرا حرامه حرامه الله و رسوله درسته الله و رسولش حرام کرده بس حرام حكم شرعية حكم شرعية را كي بات صدر بکنه الله ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بما آمر كاردك هذا شبه ربي بکنه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو حكم أبرو برداشتن چيه حرام چرا زنب و النازل بن مسلم قرآن خوندم ندیدم كجا قفتك أبرو كانت حراما قفتك اگه مي خونده مي دیده رفت خونده وره ومد قفتك ندیدم قفتك فكيف قال الله في القرآن نقول فما أتاكم الرسول وفخذ وما نهاكم عنه فانتهوا بس شيء ذكره صلى الله عليه وسلم حرام بكونه حرام يا حرام ليس حرام شر حرام شو رسل الله صلى الله عليه وسلم ما ينتهس السر صرف الله رسوله بيغمبر بيامورد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اس كهفنا ميزنا بحيله هي إنهم يجون سه كحرام حكم شرعيه كبعد السرف الله صادر بشر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء حق التشريع حلال وحرام كذلك هكذا كنس جزء الله نداره أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين من الدين ما لم يأذن به الله يعني سيناه شبعده وشبه يكوني در هر حلال حرامي بايد اذن الهي باشه یا نسی از قرآن یا نسی از سنت مصطفی صلی اللہ علیه و سلم اگر عالمی دیدید فتوه میده ده بپرسید ازش با توجه به کدوم آیین حکمی رو دادی چنین حکمی رو دادی؟, دادی یا با توجه به کدام حدیث چنین حکمی رو دادی وظیفه اون عالمه که درایت داشته باشه به وحی الهی چه از قرآن چه از سنتش و احکام را همینطوری صادر نکنه یا اینکه مقلده بگه در مذهب چنين اومده یا اینکه اگر مجتهد وظیفش که بدونه اگر مقلده آقا امام شافعی گفته یا ائمه مذهب احناف فلانی که و غیر گفتن با توجه به فلان ناس برات ذمت میکنه علما فتوا دادن ناقل فتواهای عالمی از علما هست و یا اینکه مفتی هست فتوا میده وظیفه اون مفتی که میده وظیفش هست که مطلع باشه بر و روش استناد و استلالم بلد باشه از وظایف دار کسی که اجتهاد میکنه فتوا میده باید صحت سقم حدیث را بدونه و نوع برداشت از اون حدیثم بدونه یعنی باید به با اصول فقه دراحت داشته باشه به با قواعد فقهی دراحت دا داشته باشه وگرنه ام تقولون علی الله ما تعلمون و من اظلم من, من افترى علی الله کذبا حرف سخنی میزنید که شما نمیدونید با الله نسبت میدید همونطور که از بدترین گناه ها چیه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن حرم ربي والله حرام كذب فواحش از جمله ان شي ازونه چيه قولا بر الله بر باطل بدروق نسبت دادن به الله حكمي ربي بدروق به الله نسبه بدين فبدترین ظلمم دروق بسن به الله شيزي كه الله مقصودش نبري از حكم ما به الله نسبت بدين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا دي ظلمي بالله تراز اين نيست ظلمی برات از اینکه ما دروغ به شرع ببندیم به الله ببندیم و به پیغمبرش نیست. بس اینجا صحابه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ازشون سوال می‌پرسه اینجوری جواب میدن حرام و تعریف حرام میگن حرام حکم شرعی است که از جهت شرع وارد میشه از الله و رسولش به ما اعلام میشه. فَقَالَ رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمايان لَا الرَّجُلُ بِعَشْرِ فردی از شما اگر با ده زن زنا بکنه ای سر علی یعنی آسان‌تر برش بر حساب کتاب روز قیامت یعنی جرمش کمتره در مقابله جرمش سنگینه ولی باب مقارنه در مقارنه با زنا کردن با زنی از زنان همسایه زنا کردن با ده زن جرمش کمتر از زنا کردن با زن همسایه با دختر همسایه حق همسایه هست یعنی یک زن از اون محله خودتون از اون همسایگان خودتون از اون روسای خودتون اگر با یکی از اون دختر تو ذنا بکنی چون اونا به اعتماد دارن چون هم خیانت کردی در حق اون اعتمادی که به تو دارن هم زنا کردی یعنی چندین جرم رو هم دیگه حق همسایگی رو تو پایمال کردی. چندین جرم رو تو با هم دیگه جمع کردی. این جرم جنایتش از زنا کردن با ده زن سنگین تره. این جرم جنایتش سنگینیش زنا کردن با زنی که از زنان همسایهمون هست. از زنا کردنه با ده زن دیگر سنگین‌تره در این یزید رجل العشر انس من ان زنا به امراة جاری عن السرقه سوال پرسید دوزی چیه قالوا حرام حرام حرمه الله عز وجل و رسوله الله و رسولش حرامش کرده فقال لا أن يسرق من عشرة اهله بیوت از ده تا منزل دوزی بکنه آسان‌تره در حساب کتابش در ترازی اعمالش من ان يسرق من بیت جاره از اینکه دوزی بکنه یک همسایگان خودش یعنی اگر انسان از همسایش دزدی بکنه جرمش و جناعتش خیلی سنگینتره از این که از ده نفر دزدی بکنه. این حدیث دلات بر این داره که ایمان همونطور که درجات داره ایمان یزید و ویانقص. همونطور همه ایمان درکات داره. ایمان پایین میره. لی ایمان یزید و ویانقص. لی ایمان یزید و ویانقص. کم میشه. گناه گ پست زنا قبیحه، زشت سنگینه و بدتر از اون زنا کردن با زن همسایه دختر همسایه اینجا رسول الله صلی الله علیه و مثال میزنند مثال زنا رو زدن مثال دزدی رو زدن حکم فحش دادن چیه حکم دشمنام دادن چیه حکم چه شرانی به دختر همسایه چیه لازمه که رسول الله صلی الله علیه و بیاد برامو تومار بکنه بعدیا بگه یک دو سه چهار یا کافیه این دو تا مثال که بفهمی اس حق همسایت؟ یاد همونطور همون که زنا حرام شد مطلق زنا چش حرف زدن اینا همه حرامه عین تزنی و زنا هن نظر حق نداری که زنی دختر همسایه رو با چش شرانی اذیت بکنی آزار بدی غیر از این که پای زنا نوشته میشه گناه چش به زن همسایه جرمش شناعتش، سختیش زشتیش نزد الله سختره، بدتر از این که به یک زن بیگانه نگاه بکنی جور مشخصنگین تره و همین چنین مابقیه گناه هم همین طور این از احادیثی که بحث حقوق همسایه را رسول الله صلی الله علیه و به ما گوشزد دارند و گوشزد میکنند بارک الله فیکم و صلی الله علی محمد و علی محمد